پاییز که فرارسید و نخستین بارانها آمد و گلوشل و لجن آزاردهندهی توی حیات و محله برپا شد وضع جاوید تغییری نکرد وضع هیچکس تغییر نکرد جز آنطور که جاوید می شنید وضع لیلا این پاییز برای لیلا خزان سوگولی بودنش بود دوره یک ساله نمکرده کرده ملک آرا بودنش پایان یافته بود از چشم ملک آرا افتاده بود و آنطور که بعد جاوید ملتفت شد وای به حال و روزگار زنی که در این دنیا هوای خانم باشد و از چشم ملک آرا بیفتد لیلا آنسال از باق اوین به خانه ملک آرا برنگشت یا به هیچ جای محله وزیر دفتر برنگشت جاوید از منفور شدن لیلا و به طریق اولا از بیرون شدن لیلا از باغ اوین یا حتی سربنیست بودن لیلا خبر نداشت. تا اینکه یک شب شبیه که باران ریز و کسیفی روی محله وزیر دفتر میریخ، فاطمه بگم از توی تاریکی های راه زیر زمین های خانه ملک آرا به این حیات آمد و آمد پای کریاس در اتاق جاوید نشست. در حالی که صرفه های بدی می کرد مطلب را به جاوید گفت و عجز و التماس کرد که جاوید کمک کند لیلا را پیدا کنند. لیلا هم امسال پاییز کم و بیش به سرنوشت خواهر جاوید دچار شده بود. فاطمه بگم اول گفت که هیچ کس نمی دانست. نوکرها به دستور تاج ما خانم هوای کوچولوی بدبخت را کجا برده بودند و چطور نیست کرده بودند. مادر پیر بدبخت جلوی در اتاقک که جاوید نشست، به پهنای صورتش عشق ریخت و التماس کرد و از جاوید کمک خواست. می گفت اوست که دلش با دیگران فرق دارد. عجیب بود تا حدی هم مسخرگی تقدیر که پس از مدتها تنهایی و پوچی در گوشه این باغ متروک، امشب نام کسی دوباره باید وارد زندگی او شود که برای او مرکز خاطره های تلخ بود. و به نحوی سبب اقیم ماندن فرار او و منجر به مرگ مادرش شده بود. آن شب همانجا زیر باران به فاطمه بگم گفت که متاسفانه کاری از دست او ساخته نیست. گفت که او خودش بی اجازه نوکرها نمیتواند از این باغ تکان بخورد که دنبال خواهر خودش بگردد. چه رسد به پیدا کردن لیلا که به قول خود فاطمه بگم هیچکس خبر نداشت کجاست. پیرزن با صورت مریض و سرفه های مرگ زده به جاوید گفت که ابو تراب میداند لیلا کجاست گفت آن بد جنس خودش لیلا را برده است پیرزن خودش از این و آن یک چیز هایی درباره دختر بیچاره شنیده بود یعنی شنیده بود که لیلا را کجا برده بودند اما ترس و شرم و خجالت به زن بیچاره اجازه نمیداد اسم آنجا را به زبان بیاورد جاوید از گریه ها و التماس های پیرزن دلش سوخت، متاسف بود و خشمگین بود که کاری از دست او بر نمی آمد، به پیرزن فهماند که کاری از دست او ساخته نیست و پیرزن را پس فرستاد. شب بعد پیرزن دوباره توی تاریکی برگشت، آمد با همان صرفه های بد مانند جانور زخمی و تیره بختی که جای مردان نداشته باشد در اتاقت جاوید نشست. امشب او با خودش مقداری پول در حدود صد تومان اسکناس و سکه در یک دستمال آورده بود که جاوید با این پولها برای پیدا کردن لیلا اقدام کند یا پولها را به ابوتراب تراب بدهد با ابوتراب تراب برود لیلا را برگرداند جاوید به پولها دست نزد نه این کار از دست او ساخته نیست تمام شد هیرزن از توی چادر و چار قدش یک جفت گوشواره طلا هم آورد به پولهایی که جلوی جاوید گذاشته بود افسود. گفت من مریض و بیچارم و ما جز شما کس دیگر رو نداریم. اونجا توی اون حیات من و خواهرم وسط اون همه دقل و بدجنس چیکار میتونیم بکنیم؟ ما هم مثل شما قریبیم. دختر بدبخت من یه علف بچه است که گیر این آدمهای بد افتاده، به شما هم اگه بدی کرد، اگه چغالی شما رو کرد، باید ببخشیش. داوید گفت خانم، خانم، گوش کن. من از لیلا گله و شکایت ندارم. آنچه که شده گذشته. اما در این مورد باور کن. هیچ کاری به هیچ وجه از دست من ساخته نیست. فاطمه بگم گفت خواهش داریم شما کمک کنید. تو رو به صدیقه تاهره، تو رو به هر که شما میپرستی. داوید گفت گوش کن، گوش کن. من نمیتوانم چرا میتونید؟ جاوید گفت، نگاه کن. همونطور که گفتم، من مامور خوبی برای این کار نیستم. خواهش می کنم بیشتر از این اصرار نکن. پیرزن پس از یک حمله صرفه های بد گفت، شما میتونی با ابوتوراب حرف بزنی. میتونی این پولها و طلا رو بهش نشون بدی، گولش بزنی، خرش کنی. بپرسی لیلا رو کجا برده؟ نصفش رو اول بهش بده، نصفش رو بعد که لیلا رو آورد، تو رو به عبول تو رو به خدا، تو رو به هر کس میپرستی کمک کن، یک علنگوی دیگر از دوی سینهش در آورد اضافه کرد. از کم ایمانی زن بدبخت و از اینکه داشت با نیروی آز او و عبو بازی می کرد، مکدر شد، سرش را تکان داد، نه ممکن نیست. پیرزن یک لنگه گوشواره طلا با سنگ فیروزه درآورد، گوشه دستمال گذاشت، گفت: من دیگه بیشتر ندارم، ما از شما استدعا می کنیم. جاوید فرش را تکان داد، دلش می سوخت که امزان نمیفهمید. پیرزن لنگه ی دیگر گوشواره را هم از توی لباسش درآورد و گوشه دستمال گذاشت. جاوید گفت: فاطمه بگم، فاطمه بگم گوش کن. حرف کم و بیش نیست. من چه کمکی می توانم بکنم، من چم، چه کارم، اینها مرا مثل یک سنجد میخورند و هستم را تف می کنند، باور کن، گوش کن، پولت و همه چیزت از دستت می رود، من بچه هالوی شهرستانیم و اینجا توی این دامگه قضا و بلا اسیرم، هیچ کاری برای تو نمیتوانم توانم بکنم، به فرض که این پول و طلا را برداشتم و با ابو تراب حرف زدم، او پولها را از دستم می گیرد و توی سرم می زند، بر می و میرود. بعد من چه کار می‌توانم بکنم، تو چه کار می کنی، فکر کن؟ چجمهای پیرزن به سیاهی می‌رفت و صرفه هایش بود. گفت، تو بلدی، تو درستش می تو ماشالله خیلی باهوش و زرنگی و تو تنها امید ما هستی. یک علنگوی دیگر در و اضافه کرد. جاوید آهی کشید و گفت نه و موضوع برای او تمام شده بود فاطمه بگم مدت دراز دیگری باز حرف زد صرفه کرد التماس کرد بالاخره با اشک و فوش و نفرین و یست پول و طلاها را جمع کرد مطمئن شد چیزی جانمانده همه چیز را توی یک دستمال بست گوشه چارقدش گرزد و بلند شد توی تاریکی و باران حیات ناپدید شد در تنهایی اتاقک جاوید هم عشقهای خودش را پاک کرد، حرفها و مصیبتی که برای این زن، برای این مادر پیش آمده بود، او را تکان داده بود و روح حساسش را شکسته بود. اما امسال او بیشتر از هر چیز در فکر افسانه بود، امشب می ترسید آلودگیش با این جریان امید یافتن افسانه را به مخاطره بیاندازد. نمی‌خواست خودش را با پیشامد ابوترا و لیلا آلوده کند این زندگی آنها بود در تاریکی زیر لحاف پارش با ناراحتی قلتید نیروی دیگری نیست امشب درون او را می‌خورد و می‌خراشید پایه‌های فکری او به عنوان یک زرتشتی در این دنیا مبارزه با بدی بود این را همه به او گوشزد کرده بودند و در یسنا نیز آمده بود آیا باید همینجا در تاریکی و تنهایی این اتاقک دست از پا درازتر با بیهودگی دراز بکشد؟ یا باید بلند شود و در میان این دقلها و بدجنسها کاری بکند؟ بیمناک بود بیمناک بود که در صورت مرگش به سر افسانه چه آمد و پیدا کردن و نجات افسانه چیزی بود که او تمام زندگی و آزادی و حتی جان خود را وقفان کرده بود. تمام شب بیداری کشید و روانش بین فکر افزانه خواهرش و افزانه زرتشتی و اندیشه های دیگر موج خورد. 29 صفحه صد و بیست و سه شب بعد خواهر پیر فاطمه بگم از توی تاریکی آمد. این پیرزن رقیه بگم قلنج کهنه داشت و به سختی می توانست خودش را تکان بدهد. گفت خواهرش مادر لیلا با تب و باد سینه در رختخواب خواب افتاده است نمیتواند حرکت کند او همانجا پای کریاس در همان ای که فاطمه بگم در دو شب گذشته نشسته بود نشست همان پولها و طلاها را گوشه گلیم جاوید گذاشت همان التماسها ها را کرد و انگار همان اشک ها را ریخت بعد یک سینه ریز با دورج زنجیر و سه نیم اشرفی طلا از دور گلویش باز کرد و گفت این تنها چیز ارزشدار آنها در این دنیا و تنها یادگار مادر آنهاست و امشب آن را برای نجات خواهرزاده بدبختش فدا می کرد. آن را هم گوشه دستمال گذاشت به داوید التماس کرد به آنها کمک کند به جاوید گفت او جوانی پاک و معصوم است و حرف و درد آنها را می فهمد. حتی گفت شب پیش خواب دیده بود که آقایی با عمامه سبز، عبای سبز، شال سبز و نعلین سبز آمده بود و دست جاوید را گرفته و توی دست پیرزن گذاشته بود و گفته بود، این جوان ملکوتی و خیر اندیش است تمام خاندان او از پیشوایان دین بودند نظر کرده است او به شماها کمک می کند. جاوید امشب به خاله پیر و چروکیده لیلا نگاه کرد او هم مانند خواهرش سوخته شکسته و درمانده بود تعریف خواب او هم راست یا دروغ جاوید را بیشتر متاثر کرده بود به خاطر آورد که خاندان خود پیرزن و خواهرش فاطمه بگم از خراسان و کابل و آن ها آمده بودند ملک آرا شوهرشان را از مشهد با خودش آورده بود شنیده بود که آنها در آنجا برای خودشان آدمی بودند در باغ‌های آستان قدس خدمت می‌کردند اینها نیز به نحوی مانند خود جاوید در دامگه حادثه افتاده بودند به هر حال جاوید گفت گوش کن خانم، همانطور که دیشب من به مادر لیلا هم گفتم، برای این کار من به هیچ وجه معمور خوبی نیستم. خدا حافظ، بیگدار به آب نزنید. پیرزن گفت، ما امید دیگری نداریم. نه، با این کار شما، تمام این پول و طلا هم که لابد، تمام اندوخته زندگی شماست، از بین می باور کنید. پیرزن به تلخی گریه کرد. پس از یک عمر خدمت در این محله به ملک آرا دو پیرزن امشب به پسر ناشناس خارجی و گبر پناه برده بودند. جاوید آهی کشید. گفت گوش کن. اگر قرار باشد من دل به دریا بزنم و دخالت بکنم چند تا شرط و عهد و پیمان دارد. پیرزان چشمهایش را با گوشه چادرش پاک کرد. گفت چه شرطی؟ هرچی؟ اول از همه سرعی خانم باید بداند. پیرزن گفت میدونه به قرآن میدونه. برا به سرعی خانم از قول من سلام برسان. خواهش کن خودش بیاید به من بگوید که او در این بابت مخالفتی ندارد. خانم من اوست. رقیه بگم گفت چشم. اما خانم کوچیک خودش میدونه. خواهرم به خانم کوچیک به سرعی خانم گفته. با او صلاح مصلحت کرده. و سرای خانوم چه گفته؟ آه، خانوم کوچی گفته فکر نمیکنه. جاوید در چنین کارهایی دخالت بکنه. اما شما کمک می کنی. شما کمک کن، رحم کن، ثواب داره. جاوید گفت، اگر سرای خانوم اجازه بدهد، من کوشش خودم را می تا شاید اگر کاری از دستم براید بکنم. چشم، همین امشب باز به او میگم. من باید از دهان خودش بشنوم، چشم چشم و یک چیز دیگر باید با احدی حرف نزنید باید مطلقا به هیچ احدی یک کلمه چیزی نگوید پیرزن گفت نه میدونم مگه ما نمیدونیم جاوید با پافشاری گفت نه یک کلمه نه یک ندا نه حتی یک ایما و اشاره وگرنه به قول ابو تراب وای به حال همه ما خاله پیر گفت نه نه هیچی مگه ما صابون این آدما به جاممون نخورده. جاوید پیرزن علیل را نگاه کرد بعد با آهی پرسید فرض کن لیلا پیدا شد بعد از آن میخواهید چه کاراش کنید؟ یه کاری میکنیم، خدا بزرگه. توی حیات ملک آرا که دیگر جاش نیست. پیرزن آه تلخی کشید گفت مگه ما نمیدونیم، اما به امید علی بن قرار از شهر ببریمش بیرون. مادرش فکراشو کرده، در پناه حضرت محسومه از او نگهداری میکنه، خواهرم اول چند روز قایمش میکنه، بعد برش میداره بر میگرده خراسون، سریا خانوم اجازه میدن، و ما هم هنوز خودمون اونجا سر و سامونی داریم. جاوید سرش را پایین آورد، گفت، فکر خوبی کرده اید. امید دلی ابن رزا، جاوید پیرزن را نگاه کرد، خاله پیر گفت، خدا همه رو نجات بده، خدا مراد و حاجات همه رو بده، خدا همه رو به سر و سامونشون برسونه، از صدقه سر همه لیلا رو هم نجات بده. پیرزان مدت دیگری نیز دعا کرد، بعد آمد دست جاوید را جا گرفت بوسید و دست او را با های خود خیس کرد. روز بعد سرایا خانم چند لحظهای به این حیات آمد، به هوای بردن چند تکه اساسه آمده بود، اول به اتاقهای خودش رفت، بعد آمد با جاوید حرف زد. جاوید از دیدن شکل و قیافه زرد متورم و بیمارگون دختر ملک آرا یکی خورد. او خبر نداشت که این زن تا این حد بیمار و رنجور شده است. دختر ملک آرا آمد جلوی در اتاقک ایستاد، جواب سلام جاوید را داد. بعد از احوالپرسی پرسی گفت، چه حال، چه خبر؟ جاوید گفت، دعا به شما، سه ماه پس از شب آتش سوزی و رفتنش به خانه ملک آرا، چهره محتابی سرای خانم، امروز همرنگ روغن زیتون فاسد شده بود. پرسید، خبری از افسانه نشد؟ جاوید گفت، نمتاسفانه هنوز. حال خودت چطوره؟ زنده هم، فکر میکنم. خواست بپرسد شما چه دردی دارید خانم، اما هنوز رو رو در بایستی میکد، گرچه این نخستین باری بود که سرای خانم تنها و خودمانی آمده بود. فاطمه بگم را با خودش نیاورده بود. جاوید یادش افتاد آن زن مریض و بستری است. سرای خانم خودش بقچه را که از اتاقهایش آورده بود به دست گرفته بود. جاوید پرسید خانم حال فاطمه بگم چطور است؟ شنیدم بیمار است؟ سرای خانم سرش را تکان داد گفت حالش خیلی بد است. جاوید به چشم او نگاه کرد، منتظر شد. سرایه خانم گفت، اگر برای شما زحمت زیاد نمی شود، به این بیچاره ها کمک کن. من می‌خوام خوام هرچه هست پیدا بشود و همه برگردند خوراسون. جاوید گفت، چشم. با این مریضیش شاید فاطمه بگم به خوراسون نرسه، اما خب لاقل می خوام دخترش رو ببینه و ببینه به عاقبت خیری میرسه چشم. من کوشش می کنم. و مواظب به خودت باش. چشم. احساس می کرد که مهر و حقشناسی آن زن برای مستخدمهاش هاش بیشیل پیله و پاک بود. اگر دین و ایمان در این محله بود، این زن داشت. ببین چه کمکی می کرد، اما با فکر برو جلو. چشم. و خیلی مواظب باش. چشم. ابو تراب می دونه لیلا کجاست اون لیلا رو از اوین با کالسکه بردش حالا هر جا بردش خود ابو تراب به مشخدا داد کالسکه چیه هوشنگ میرزا گفته که لیلا رو برده اما نگفته کجا من نمیدونم اوین چه اتفاقی افتاده و اون آتیش به جون گرفته باز چه دستگلی باب داده بوده که پدرم گفته ببرن که دیگه جلوی چشمش نباشه خلاصه هرچی هست ابو تراب می دونه. جاوید با دقت به حرفهای سرای خانم گوش کرد، گفت، چشم، من با ابو تراب یواشکی حرف میزنم. زنم، سرای خانم گفت، خیلی خیلی موازب باش، نگران نباشید خانم، من یه خورده می ترسم. من هم می ترسم، چرا دلم گواهی چیزهای بد میده. جاوید گفت، درست میشه. نگرانی نداشته باشید، چشم های سرای خانم تیرگی و خمودگی یا شاید درد تازه ای داشت. بدنش نیز زیر چادر چاقتر و پف کرده تر از همیشه بود. جاوید بخچه را از دست او گرفت برایش آورد. به او گفت که می‌تواند به فاطمه بگم اطمینان دهد که او هر گونه کوششی خواهد کرد و قسم خورد. سرعی خانم از او تشکر کرد و با او خداحافظی کرد. جاوید بغچه را تا در حیات بیرونی ملک آرا آورد و در اینجا ابو تراب که با قد کتولش جلوه کالسکه تقریبا لای پاهای اسب‌ها پا ایستاده بود آمد جلو و بغچه را از او گرفت وقتی بخچه را به ابو تراب میداد زیر لب به او گفت که غروب اگر وقت کرد یک سر پیش او بیاید گفت چیزی برای او نگه داشته است گفت کاری با او دارد ابو تراب با چشم‌های تنگ و بدبینش او را برانداز کرد. بعد خندید. جاوید بدون کلام دیگری سرش را پایین انداخت. به باغ متروک برگشت، داخل شد و شنید که ابو تراب در باغ را از بیرون قفل کرد. سی، صفحه 128 بعد از ملک آرا، مردی که جاوید او را بیشتر از هر کس دیگر در این دنیا دشمن خود احساس می کرد، عبو تراب کالسکچی بود. ابوتراب تراب مانند قلوم علی و میرزا از قرخان هیچ وقت صاف نیامده بود جلو که او را کتک بزند. در شب تاریک با چماغ توی سرش نزده بود. پولش را ندازدیده بود، جایش را زخمی نکرده بود، اما به هر حال همیشه یک حس شوم و بینام و خفه از ابو تراب در جاوید بود. شاید به این دلیل که ابو تراب قد خیلی کوتوله و ناقص ای داشت و مثل جن مدام یک جا توی سایه ها یا پشت یک چیزی قایم میشد، دور می تا او را صدا کنند. ابو در اصل از چاقوکشها و اوباش خیلی قدیمی تهرون و پسر یک قصاب محله پامنار بود. یکی از برادرهایش اسگرخان که اصلا میرغضب به نظمیه بود و هنوز توی میدان اعدام برای نظمیه چیها سر میبرید. جاوید حرفهایی را که از سر بریدن از دهان بچه های قلوملی میشنید یادش بود. که چطور توی میدان صبح اعدام یک نفر محکوم را روی زمین دوزانو می و خودش از عقب دو تا هایش را اول توی روغن فرو می کرد و توی دماغ محکوم فرو می کرد. سرش را می کشید بالا و گلویش را گوش تا گوش می برید. می گفتند ابو تراب برادر کوچکتر و تختر بوده. و در جوانی از شبها یک دست قط و یک دست بطری عرق کشمش پامنار را غرق می کرده. بعدها که به خدمت ملک آرا درآمده بود ملک آرا شرارت او را مهار کرده بود. پولش داده بود عوضش کرده بود تعلیمش داده بود و به اصطلاح حلقه به گوشش کرده بود. عبو تراب سالها بود که برای ملک آرا خدمت گذاری میکرد. جمله مشهورش این بود اگر آقا بفرمایند داداش کوچکم را بگذارم لبه هود سرش را ببرم، نامردم که نبرم. و حالا در خدمت ملک آرا پیر شده بود. حدود چهل و پنج یا پنجاه سال داشت. کتوله، خپله، ریشو، ساکت، بدترکیب جاسوسوار او بود که شب آتش سوزی خانه سرعی خانم به دستور ملک آرا یواشکی از راه زیر آمده بود و به در و پنجره اتاقهای این سمت حیات نفت ریخته و آتش زده بود و از همان راه فرار کرده بود و این مطلب را سالها بعد جاوید از خود عبو تراب شنید. با چنین موجودی بود که جاوید مقدر بود نخستین معامله را با آدمهای دنیای ملک آرا بکند. سر شب ابو آمد، در حیات باز شد، بعد بسته شد، بعد صدای خشخش گیوه های ابو که سلانه سلانه روی زمین کشیده میشد، تا پشت در اتاقک که جاوید رسید. ابو با توک پاش در را زد باز کرد، بوستین تیره روی قبای بیرنگش بتنداشت، در حالی که هنوز یک انگشتش تا تحت توی یک لوله دماغش بود، پوزخندی زد و گفت چی تو کلته جاوید جوجو؟ جاوید تعارف کرد که بفرماید بنشیند، گفت عرض دارد. عبوترا پوزخند حلقومی دیگری زد. اما به هر حال یک آخه یا علی گفت و سر تو که پایی سینه دیوار نشست. هنوز انگشتش توی دماغش بود، گفت نموردیم و دیدیم که سنده دهن وا کرده، جاوید جوجو عرض دارد. جاوی تصمیم گرفته بود که گاف را از شاخش بگیرد و کاری را که به عهده گرفته بود راست و پوست کنده درمیان بگذارد. خواست از ابو تراب خواهش کند چنان که بعد از آن که حرفهای او را شنید و نخواست مداخله کند مطلب را نشنیده بگیرد. بعد دید که این خواهش از ابو تراب بیهوده و حرف مفت بود. دستمالی را که رقیه به گم شب پیش آورده بود و به او داده بود، از جیبش درآورد، جلوی ابوتراب باز کرد. از پول و طلای دو خواهر خراسانی، امشب جاوید فقط نیمش را توی دستمال گذاشته بود. در حقیقت اسکناس ها را هم از میان نیم کرده بود. نیمه دیگر همه چیز را خودش بسته بندی کرده و یک جا توی باغ دفن کرده بود. گفت گوش کن این نصف پول و است که مستخدمه های سرایه خانوم به تو می دهند که فقط به آنها بگویی که لیلا کجاست. نصف دیگرش را هم من خودم تعهد می کنم که به موقع تحویل شما بدهم. بقیه در دسترس دست من هست اما پیشم نیست. ابوتراب با دهان باز چشم های حیرت زده و گوشهای درازی که از زیر کلاه پوستیش بالا زده بود گوش می کرد. هرگز اینقدر پول و تلا لابد در عمرش حتی در خواب هم ندیده بود و از که از وسط صورت احمد شاه نصف شده بودند. جاوید ادامه داد این بیچاره ها فقط میخواهند دخترشان را بردارند از این شهر خارج شوند. موضوع به گوش احدی هم جز من و تو نخواهد رسید. بیچاره هند. مادرش مریض و بدبخت است و خالاش علیل و مفلوک. بیا او این یک ثباب را در راه خدا بکن. این پول و خرت و پرت هم مال تو. چشم های تنگ و سیاه ابوتراب به دوروبر اتاقت بود. همه جا را داشت بررسی میکرد جاوید خیالش را راحت کرد. گفت نصف دیگر این ودیعه در این اتاق نیست. گفتم در دسترس هست اما پیش من نیست. بلند شو هر جا را هر سوراخی را اینجا خاصی بگرد. صبر کرد تا این حرفش این پیشنهادش در مغز ابوتراب رسوب کند، جذب شود. ابوتراب انگشت دلخواهش را در لوله دلخواهش کرده بود. مدتی به کاوش و استخراج پرداخت. این لابد سیستم فکر کردن و اندیشیدنش بود. سرسری پرسید. کی گفته من میدونم لیلا کجاست؟ جاوید گفت همه شنیدند، همه می دانند. به هر حال شما می توانی پرسجو کنی بفهمی کجاست این اجرت زحمت شماست ابو تراب را بالا انداخت گفت نمیشه جاوید گفت به هر حال این بیچاره ها امیدوارند ابو تراب با صدای بلندتری گفت نمیشه و آخر کلمهش را با اخم کشید سینه و شکمش را خاراند جاوید به رگ دیگر ابو تراب زد گفت شما در جوانی پهلوان محله بودی، هر جا گردند کلوف توی شهر بوده از شما حساب میبرده اما هیچ وقت از دستگیری بیچاره‌ها و زعفا ترس نداشتی. ترس؟ چشم های ابوتراب باز به قیز افتاد. جاوید گفت، بزرگان از کسی نمی ترسند و یارو پناه بیچاره‌ها ها هستند. ابوتراب گفت، آره به مولا، علی یار و یاور زعفا و بیوهزنها بوده، پس گردن و موهایش را خاراند، جاوید گفت زنده باشی، ابو تراب گفت هر کی، هر نامثبی که بخواد به زعفای اسلام ناکار بزنه، خودم ناکارشون می‌کنم. جاوید گفت پس این بیشاره ها را کمک می کنی، ابو تراب گفت این مطلب نمیشه، بیخ داره، اما لحنش به محکمی و با اخم و تخم اول نبود. باز انگشت توی دماغ رفته بود. جاوید گوشه دستمال را گرفت. آن را یک وجبی به سوی خودش کشید. گفت پس باید اینها را پس بدهیم که به یک نفر دیگر بدهند. ابو تراب گفت حالا اومدیم فهمیدن اون لکات کجاست. گفتی میخواین چیکارش کنند؟ کنن؟ جاوید گفت البته او را به خانه ملک آراک نمی آورند، از همانجا میبرندش خوراسون خودشون گفتند خوراسون ها بله خوراسون قوم و عشنا دارن. و آشنا گفت اگه شانس بفهمه همشونو میده از دم غمه رد کنن. جاوید گفت درست گفتی و درست فهمیدی اما این زنها هم بچه شیرخوره نیستند اینها بیست سی سال در این خانه بودند میدانند گربه کجا تخم میکند شبانه حرکت میکنند طرف خوراسون ابوطراب داشت توی کلش با پولها و طلاها معاشقه میکرد بعد وقتی دست جاوید داشت دوباره به طرف دستمال میرفت ابوطراب با نیشخند گفت تو هم خیلی ناکس و پلیتیک بازی پدر سوختهٔ حقه دست مدت از روپولا وردار هی hey, از جلو من نکش. وگرنه بلند میشم یک جفت دست قلم شده تحویلت میدم داشت نرم میشد جاوید دو کف دستش را به او نشان داد، گفت، من که از اول همه چیز را گذاشتم جلوی روی سرکار. آره عروای مشکمت، نصف دیگه پولا و تلاها کجاست؟ هست، از کجا بدونم چیزیشو خود حرومزادست بلند نکردی؟ جاوید تو روی او ایستاد، گفت، ببین درست حرف بزن، من از مرگ و از کسی نمیترسم. بلند شو بردار سرم را ببر اما حرف دهنت را بفهم. هرچه که اینجا توی این دستمال هست نصف دیگرش یا لنگرش بعدا تحویل شما داده می شود. به یک گردن بند با سه نیم اشرفی که نصف نشده و درسته مانده. ابو تراب گفت دروغ میگی مثل سگ. جاوید گفت در مرام من دروغ وجود نداشته. دروغو دشمن خداست. ابو تراب با مسخرگی گفت. مرام تو؟ هه. تو گبر بودی. شازده ختمت کرد. مسلمونت کرد. تموم شد. جاوید گفت. هر طور میخوای فکر کن. بعد صحبت را به موضوع اصلی برگرداند، نمیخواست بگو مگو کنند. ها